بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه اجمعين بعد امروز میخايم از اختلافات كه بوده بيرو ميام مطلب يا اخر قولي بحث فترت رو داريم دوتا قول مشهوری که قبل انگوزشت بحث فطرت به تعبیر جبری ها تعبیری دیگه تعبیر تعریف قبل قدری ها داشتیم ببینید اهل سنت و جماعت چه موقفی دارن در احادیث فطرت و فطرت را چگونه فهمیدن طبقا فطرتی که در قرآن و سنت اومده اهل سنت ما کم و بیش در رد بر معتزله و اشاعره و دیگر فرقه ها کما بیش اشاره کردیم که فطرت به اون معانی نیست بلکه به معنای اسلامه بله فطرت در نزد اهل سنت به معنای اسلامه اون چیزی که گفته جوهور علماء اهل سنت هست هرچنکه خیلی از علماء اهل سنت به نحوی گرایش دارن یا به اشعریت یا به اعتذار لیکن جمهور این مخصوصا محدثین بر اینن که فطرت همون اسلام هست اولین استقرارشون به فرموده خداوند در سوره روم رای اسی فاقم وجهک لدین حن فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون قبل ما بين اي اشاره كرديم و گفتيم كه اين آيه دلالت بر اين دارد كه مقصد از فطرت اسلام است اولاً ما گفتيم كه فرموده خداوند فاقم وجهك للدين فاقم قیام و برپا داشتن، به معنی برپا داشتن دستوری حقص صرف خداوند، فعقم، یعنی برپا بداره این محمد خودت را بر دین حنیف، یعنی استوار باش. خب، حالا نگاه بکنیم در خود، یعنی وقت نزول این آیا، این آیا کی نازل شده؟ آیای ای ای از آیای های سوره رومه، آیای مدنیست درسته؟ یک از سوره های مدنیست. خب خداوند خبر داده از نمیدونم مدنی یا مکیش را شاید در شک افتادم لیکن این آیه یعنی جز سوره هایی هست که بعد از رعصت پیانبر صلی الله علیہ وسلم به مدتی بر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نازل شده رسول الله مسلمان بوده درسته وقتی که این آیه برش نازل میشده مسلمان بوده پس اینجا امر به چیز جدیدی نیست عم بشید جدیده هست؟ مکی والا همین بحث مکی بودنش آلا آخر عهد مکی هست در حین که این آیه نازل میشده رسول الله صلی الله علیه و سلام مؤمن بوده درست مسلمان بوده پس مقصد از این آیه استمرار بر آن چیزی که سابق خداوند قبلا بهش خداوند گفته فرقم وجهك لل دین حنیف اون دینی که برش هست خداوند ازش میخواهد که استقامت بورزه دستور بهش میده که مستقیما رویش بإستوى كاملا متوجهين لدين بشه لدين فاقم وجهك للدين مقصود از دين با الف لام تعريف لدين این از دین معروفه برمیگرده به چی دینی فاقم وجهك محمد مصطفی الله علیه و سلم برای بعد حنیف حنیف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 بس أي محمد اصطوار بر دين حنيف دين اسلام حنيف فترة الله التي فتر الناس عليها ديني كيف اقبل نقوا بكوني فترة الله فترة, فترة منس من منسوب منه بفرح درس فترة الله خب یا انك منسوب بفعل مقدر يعني اي محمد ملتزم باش يعني ای محمد استوار باش بر فترت خداوندی با و یا اینکه که منصوب بر مستریت که فعل اول دلالت برش داده فاقم وجهکل دین حنیفه بعد دوباره فاقم وجهکل دین حنیفه بعد دنبالش فطرت الله التي تی یعنی این فترت ای محمد استوار باش بر فترت خداوندی چنو فترتی؟ فترتی که خداوند مردمان را بر آن گذاشته است التي فطر الناس عليها پس اینجا ما از این آیه این چنین استنباط میکنیم که خداوند از این فطرت به خوبی یاد میکنه ای محمد فاقم بردین حنیف دینی که اسلام فترت بر اون فطرت استوار باشه خب ما گفتیم قبلا هم بهش اشاره کردیم در این آیه فطرت به وجه نیکی اومده یا به بجه ولی وجه اینه محمد روی فطرت باشه. اگر برحسب قول جبری بگیریم یا قول قدریه بگیریم که انسان اصلا مسلمان نیست اصلا فطرت اسلام نیست فطرت اصلا یک فهم و درک عاد عادی هست وجه محمود درش نیست یعنی دستور خدا در اینجا که محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روی اون استوار باشه میشه معنی. پس باید این چنین معلومی باشه، یه چیزی پسندیده در در نزد خدا باشه. تا اینکه این دستور معنا داشته باشه. پس اینجا خداوند دستور میده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام که اسوه بدینه با حنیف باشه، دین اسلام حنیف، اون فطرتی که خداوند مردم را بر اون خلقت کرده، لا تبدیل لخلقت الله که قبلا بهش اشاره کردیم، که گفتیم یا به معنای خبره، به معنای طلب یعنی دستور خداوند میده لا تبدیل لخلق الله ای لا تو بده بد دو خلق الله و گفتیم به منه من دیگه خبر از بابشه که خداوند میخواد بگه ای مردم لا تبدیل لخلق الله یعنی خلق خداوند متفاوت نیست یکسانه و عوض نمیشه یعنی اون چیزی که خداوند ماها را برانو خلقه کرده یه چیزی یکسانی هست و همین بحث در آیات دیگر هم به اشاره شده مثلا در سوره نساء 125 هم به اشاره شده و من احسن الدین من من اسلم وجهه لله اسلم کسی که مسلمان، مسلمانانه یعنی تسلیم شده به سوی خداوند باشه و هو محسن و اتبع ملت ابراهيم الحنيف این ای آیه تائیدی است بر همین آیه بازم چه کسی دینش بهتر از کسی هست که دینش یعنی بر اساس تسلیم تسلیم به امر خداوند باشه و احسان خوبی بکنه و بر ملت ابراهیم حنیف باشه و از شرک و مشرکین دور باشه این دلیل اول دلیل دوم که سریحتر از آیه قبلی هست یا یه نوع شرحی هست بازم بر آیه قبلی فرموده خدا در سوره اعراف آیه سد اختاد و دو و اید اخذ رب اید اخذ من بنی آدم من ظهورهم ذرگیتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا تو انك يريد خدوان ان تقولوا يوم القيامه انك كنا عن هذا غافل غاف غافل مقابل بيني و ايش اشاره كدي و ربكش ديدين بحديث مام لا يولد على الفتره دار اين ايه دلالتها اخذ ربكم من بني من ظهورهم ذريتهم در این اشاره ای هست که خداوند وقتی که آدم را خلقت قطع بندگان را از صلبش از کمرش بیرون میاره و بعد جهنمیان رو به اشتیار مشخص می کنه. قبل از اون خداوند ازشون گواه می گره الستو براق بکن من پروردگار شما نیستم قال و بله شهدنا می که بله ما شهادت و گواه میدیم به پروردگارید. آلا یک مطلبی هست شلا جلسه آینده از مهمترین مطلب واون هم این که این فطرت دلالت بر توحید ربوبیت داره یا دلالت بر توحید الوهیات؟ الست بر ربك من توردگار شما نیستم آیا دلالت بر ربوبیت تنها داره یا اینکه دلالت بر الوهیت داره؟ این خدا ما فقط شهادت تو گواه گرفته به عنوان اینکه خالق هست. یا اینکه نه، فراتر از اینه. حالا باید این مسئله بررسی میشه ان میگذانی برای جلسه‌ای آینده. این بحث فطرت که اسلامه. علومن اسلامی گفتیم که بعدا براتش خواهیم کرد لیکن اینجا خداوند ادلسن دوآ میگیرد بر حالا اشاره بر در این آیه به پروردگاری خداونده پروردگاری گفته شده یعنی خداوند خالق و رازق و مدبره قال الست خداوند میگه است وعشتم الانفس الست بربکم شهادت الجوازشون میگیره که از بندگان تمامی ما ها که آیا من پروردگار شما نیستم میگه قال بل اشهدنا بعد دوآ میذنه فدونباله الايه تائيدي هست بر همین مطلب ان تقول يوم القيامه ان كن عن هذا غافل غافلين ان تقول يعني كراهيه ان تقول وا تقديرش وا مقدرش بكنين يعني اينكه تا اينكه شما نيايت ان تقول تا اينكه شما نيايت روز قيامت بگوييد كچي ما از اين غافل بوديم اصلا هيچ دليلي بر ما نبود هیچ مدرکی ما نداشتیم بر وحدانیت تک بروردگار هیچ دلیل ما بر تو نداشتیم ان تقولوا تا این که نگید ان تقولوا یعنی تا این که یا من القيامه روز قیامت ان كنا عن هذا غافلين ما از این مسئله غفلت داشتیم غافل بودیم دیگه نگید غافل بودیم این در نفس شما هست پس یک چیز محمودی هست یک گرایش محمودی در نفس انسان هست یک تمایل خاصی هست خداوند اقامت حوجت کرده اونجا که دیگه روز قیت دوباره نییم بگویم که چی ما نه ما ازا اسلام نشختیم اصلا کسی نید ما رو دعف بده یا کسی ننیمت که نمیدونن به ما راهنمایی بکنه این نیاز به راهی نداره در نفس خودت میدونستسی خدا رو میش در نفسه خودت لیکن به نفسه خودت بر نگشت. دنبال آیا بادم او تقول و ان عاشق تا اینکه روز قیمت ننگید که ما معذور بودیم، پدران ما مشرک بودن، ما رو مشرک کردن، دیگه این عوض نیست. که بگید پدرم و مادرم رو مشرک کردن، نه. پس، حالا نگاه بکنید؟ در این آن تقولو، این ما اشرا که اباؤنم. آیه با روبیت شروع شد. شرک با شرک خاتمه می پیدا میکنه این مبحث، این مبحث. که یک نوع لمس میشه که بحث از روبیت تنها نیست، یک گروه از اسباب متکزیله که از این آیات استنباط میکنن که فقط بحث بحث اقرار به صانعیت خداونده خداوند خالق رازده ولی وقتی که اینجا دنبال آیه رو بگیریم مطلب رو کامل بکنیم ان تقول تا اینکه نگید روز تقول تا اینکه نگید روز قیامت ان ماشرک ابونا که پدران ما بودن که ما رو بادر بشر کردن این عذنیست یعنی روز قیامت نگید بگی که ما معذور بودیم خصوصا که همین مطلب حالا من فقط الان اشاره می‌کنم مجبل بهش می‌کنم ان که بعد بحثش با سر می‌کنیم همین مفهوم ما در داریم در روایت انس در صحیح بخاری و مسلم که رسول الله الله علیه و سلم خداوند روز قیامت می‌گوید یقول الله لأهول اهل النار عذابا خداوند آن پروردگار به کمترین کسی که در جهنم عذاب خطاب قرار می‌دهد و لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت به آیا در ب اندازه زمین چیزی داشتی فدای نجات یافتن از جهنم می کردی. قال نعم، اون شخص جهنمی مبد آري. قال فقط سألك ما هو أحوان من حال. من کمتر از این نت خواستم این کمتر از این دنیایی که میخوای فدا بکنی و انت فی صلب في صول بآدم ال تشرركبي ال تشربي. ke be man shirk nayari fa abayta illa shirk fa to ham esrar dashti ba shirk goftam yani man ghablan in in iqraro azat gereftam ke shirk nayari vali to esrar kardi ba shirk pas khoda ta'ahud gerefte mushrik nashim ta'ahud gerefte bar ubudiyatash ta'ahud gerefte bar rububiyatash bar asma wa sifatash حالا ترس نوعی توحید در اینجا هفته است که انشاءالله بعد بحثش بازتر می کنیم ولی که بحث ما در اینه که بحث ما در اینه که این آیت دلیل بر این هست که اساس اسلام خداوند به انسان ها نشان داده چون اساس اسلام تسلیم شدن به خداونده و توحید ولوهیت یعنی چی؟ یک تا قرار دادن خداوند در پرستش آبادت یعنی تسلیم امر خدا بودن در پرستش یعنی همون ه پس خداوند اسلام را به انسان در نفس انسان گذاشته و تعهد هم بر اسلام به انسان گذاشته گرفته که انسان ها مسلمان باشه و ات اخذ من بنی آدم من ذریتهم و ات اخذ ربک من دلالات بر این هست خداوند فطرتی در انسان قرار داده که اون فطرت اسلامه و این اسلام بر اساس اقرار به وحدانیت خداوند از جمله ادله حدیثی هست که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که ما قبلا هم به اشاره کردیم توضیحش هم مفصل دادیم ما من مولودن الله یولد علی الفطره فابوه یحبدانه و ینسران كما تنتج البهیمه بهمه جمع هل تحسون فيها من جدعا قبلا شرحش مفصل دادی و گفتیم که خیلی این حدیث صریح به اینکه فطرت اسلامه هست بحث را فراموش نکردیم فقط الان یک مطلبی هست که در صحیحه بخاری اومده ادامه مطلب ابوهریره الله عنه میگه اقرا وان شئتهم فتره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ابوهریره این فترتی که در این حدیث اومده امام میوده الا یذاره فتره بی آیه تعبیرش میکنه فتره الله التي فتر الناس عليها در این آیه اشاره هست به فهم صحابی صحابی این فترتی در این حدیث بیان شده این فترت محمودی در این آیه ذکر شده رو میدونه یعنی اون فطرتی که این فطرت ما مولودا الا یولد علی الفطره همین فطرت اللهی همین اسلام خداوندی که در نفس انسان گذاشته و ما قبلا به این آیه هم اشاره کردیم و توضیح هش دادیم ابو هرره رضی الله فهمیده و به این آیه جنین میکنه و همیشه هم بحث اصولی که هست میگن و راوی حدیث به روایتش آگاه‌تره خود سن اینجا هم صحابی هم هست خودش میدونه مقصد از حدیث حالا بعضی ها به خودشون اجازه دادن این حدیث حدیثی که هست در صحیح بخاری و مسلم زیر سوال بردن و گفتن که ابوهورره بد فهمیده ما قبلا به این مساله اشاره کردیم که این حدیث نه تنها ابوهورره بلکه جابر بن عبدالله و دیگر صحابه روایت کردن بازم به این مطلب اشاره, اشاره خواهیم داشت این حدیث تنها ابوهورره نیست که روایت میکنه خیلی از صحابه هستن که روایتش کردن و ما نمیتونیم متهم به ابوهورره بکنیم که ابوهورره بد فهمید. ابو فهمیده بد فهمیده خب بر چه اساسی بد فهمیده؟ بس بقیه هم بد فهمیده و حالا مثلو دیگری که در زیر این مسئله هست حالا خود بخاری زیر سوال میره همی محدثی زیر سوال میره همین ها زیر سؤال میره و خود صحابه هم عدالتشون زیر سؤال میره و دیگر مطالبی کلا نیاز به ذکر و بحثش نیست قجم لروایت ها روایت عیاض ابن حماد داری برادی الله عن که میگن که رسول صلی الله صل علیه وسلم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 من خداوند میگوید که من بندگانم را حنیف گفتیم حنیف مائل از شرک حنیف مسلمانه مسلمان کسی که تسلیم امر خداونده نه تسلیم امر باطل و امر هوای نفس و امر شیاطین کسی که مسلمانه حنیفه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بعثت بالحنیفیه السمحه بعثت بالحنیفیه یعنی بعثت بالاسلام رسل برای اسلام و تعلیم اسلام فرستاده شده درسه Fes hanifiyyett dine islami. Inni khalaqtu av abadihun afa. Men bandegaramra hanif hvilket kertem. Kullah. Hammesho. Hammie bandegarra hanif hvilket. Jani muslima hvilket kertem. Wo innahum atatthum os shiattin. Fajtaalathum an dinaheim. Bez shiattin umedden onharo gomroh kerdden. Az een asli. Pes asli thabit. Baedha. Tverset shiattin gomrohjia pish umed. Pes. بس فطرت انسان دروسته بر اساس مستقيمه دین اسلامه و شیاطین اومدن که ماها را از اسلام خارج بکنن و از فطرتمون دور بکنن این روایت عیاض و روایت بعدی روایت اسود بن صریعه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام مرافرسات در یک یک جنگی یا به سوی خیبر مرافرسات برای جنگ با مشرکان و در اون جنگ سبب شد که ما بچه‌ها رو بکشیم بچه‌های مشرکین اومدند نزد رسول الله صلی الله الله ازشون سوال میکنه از باب توبیخ ما على قتل الذريه چی سبب شد که شما نوزدان رو بکشید فقال يا رسول انما كان اولاد المشركين يا رسول بچه‌های مشرکین قال وهل خياركم الا اولاد المشركين بهترین شما غیر از اولاد مشرکینن یعنی ابوبکر و عمر بهترین شما هستند میگه غیر از اینی که پدرانشون اینا نفس محمد ما من نس متولد الا علی الفطره والذی نفس محمد قسمون کسیک جان من محمد ما من نس متولد یعنی کسی نیست دنیا میاد الا علی الفطره مگر اینکه روی ما غير ان كليه فترات والذي نفسي ب نفس محمد بيدهم ما من نسمه تولد الا على الفتره حتى يعرض عنها لسانها تو ان ان شخص زبارش كش بش تو ان ان شخص گمراه بش و ده روايتي حتى يعرض فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه تو ان يعني اخراج شخص تسيق شهادتين مادر بسيه نصرانيه مجوسيات بسيه شر پس اساس ثابت بعد گمراهی پیش میاد پس دین اسلام هست و بعدها گمراهی پیش میاد و اینجا هم رسول الله صلی اللہ علیه و سلم نه می از کشتن بچه ها و نوزادان مشرکین به خاطر اینکه اون نوزادان بر اساس اسلام به دنیا آمدن و هنوز شرک و اسلامی برای یعنی هنوز اختیار از از خودش برای پذیرش شرک یا اسلام اساس اسلام رو دارد اساس اسلام دیگه خب وقتی که پدرش رو کشتی مادرش رو کشتی چه نیاز هست که اون بچه رو بکشی چون پدر و مادرن که تو راهش میکنن و هنوزم این طفل مکلف نشده روی اسلام است پس حق نداری که اون بچه‌ای که هنوز روی اسلام هست هنوز کفری برایش اسمت نیست اون بچه اون نوزاد رو بکشی و این مطلب رو تایید میکنه فرمودی رسول صلی الله علیه و سلم حتی یعروبو عنها لسانها یعنی تا اینکه یعنی تا وقتی که این نوزاد زبان به سخن نگفته یعنی زبانش به جریان پیدا نکرده کف را نطخ نکرده خودش با خست و عقل خودش شک را تجویز نکرده و مشرک نشده حق ندارید که او را بکشید و او را از بین ببرید، رو هلاک بکنید. بله. اینم حدیث تائیدی است بر اینکه فترت اسلام و خداوند در نفس تمامی انسان‌ها گذاشته. از جمله ادله، ادله زیاده مثلا ما داریم در احادیث 5 من, من الفطره یا داریم 10 من الفطره ده چیز از فطرت، پنج چیز از فطرت. و بعد در اون بحث تراشیدن سبیل و نمیدونم حلق آنه و نمیدونم این مسائل چیدن چیدن ناخن و این مسائل درش بیان شده این مسائلی که در این احادیس اشاره شده آ 5 تا 10 تاش چه مسائلی هست مسائلی که متعلق به چی هست اسلام درسته آداب و احکام اسلامی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 من السنه یعنی چی؟ من السنه یا من الفطره طبق مسائل و احکامی که درش بیان شده دلیل بر این میده که این مسائل مسائل اسلامی هست و این پنج پنچیز،, پنچیز از اسلامه فطرت همون اسلامه خصوصاً علالخصوصی گفته در بعضی از طرق ربعت ها آمده مثلا خمس من, ال... من السنه پنچیز از سنت یعنی از سنت و شرع و طریقهی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم برای اون فرستاده شده پس اینجا کلمه فطرت مترادف با سنت و تشریعه تشریع, تشریع آسمونی همون دین اسلامی که از طرف خدا بند برای اون فرستاده شدن آخرین دلیل که میتونی من آن ذکر بکنیم نه دوتا دلیل هم هست دلیل هفتم فرموده رسول الله صلی اللہ علیه و سلم که اگر کسی از شما خواست که بخوابه، بوزو بگیره بعد وقتی که به فراش خوابش اومد بگه اللهم اسلمت وجهي اليك و قبولت امري اليك وجعلت ظهري اليك تا آخر که میگه تو انمت مت على الفتره اگر اون شب بمیری بر فترت مرده ای اللهم اسلمت وجهي من منني بسوي تو خدا من تسليم شدم تسلیم امام دین اسلام دیگه اسلام واسه تسلیمی یعنی تسلیم شدن به خداوند کسی که این ذکر رو بگه بعد از وضوع گرفتن اون شخص اگه در اون شب بمیرد بر فطرت مرده یعنی چی؟ یعنی بر اسلام مرده مسلمان از دنیا رفته چون با ذکر و وضوع و طاعت و عبادت از دنیا رفته خب اگر ما بگیرم این فطرت هیچ طبقه به مزد مثلا قدریه هیچی نیست فطرت اینه هیچ یعنی خالی ذهن خالی از یه چیست آیا یک مدحی درش هست؟ آیا یک ذکر خوبی خیلی درش هست؟ که انسان توی فترت از دنیا رفته یعنی محمدی درش هست؟ خوبی درش هست؟ خیلی الان وجه خوبی هست مردی بر فترت مردی یعنی یک عجر و پاداش بزرگی دارید و آنم این که مسلمان حقیقی از دنیا رفته یعنی رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ ای وآلہ یک عجر مترتب بر این ذکر رو این ادب میکنه این ادب در مقابلش این چنین این چنین پاداشی رو داری. خدا, یا خدا من خداوند گناهانتو میامرزه یا فضیلت بزرگی رو بهیده پس یک ستایشی درش هست یک ستایش و گفتی وقتی که ستا... ستایش شد پس حتما این چیز چیز خوبیه نمیشه که چیز بدی درش باشه طبق مذهب جبری و طبق مذهب قدریه از جمله آخرین مطالب بالا فهم صحابه هم هست در همین مطلب حضرت رضی الله عنه یک شخصی میبینه که نماز میخونه Grykku'j, sær-særil og grykku'j hudumun. Nei rukku'j, gammelig, og nei søjød. Begge vi ikke, men sallet. Du er noe med å gjøre det, ja så. Og når du er, du er på en gyrt fætra. Hvis du er mød, mød på en gyrt fætra, det er på en gyrt fætra. Det er på en gyrt fætra. Det er på یعنی روی سنتی که محمد مصطفی و روی اسلامی که محمد مصطفی برش میده واضحه اگر بمیری بر غیر فطرت مرده ای یعنی برغیر اسلام مرده ای الاتی فطر الله محمد صلی الله علیه و سلم علیها ام فترتک محمد مصطفی خدا برایش خلقت کرده و گذاشته و برام فرستاده شده پس این حدیث که آلهی هج هم در صحیح بخاری بود حدیث قبل در سنه نبوده بود با سند صحیح آخری هم در نزد امام بخاری بود ما حالا خلاصه این مطلب تبقیه این حادثی که الان داشتیم و طبق این آیات قرآن به دین نتیجه برسیم که که فطرت اسلام و اسلام به خداوند دین مشترکی بوده بین تمامی انبیا تمامی انبیا به سوی اسلام برساده شدن از آدم علیه السلام تا محمد مصطفی صلی اللہ علیه وسلم ما چیزی به اسم یهودیت و نصرانیت نداشتیم یهودیت و نصرانیت و مجووسیت و بودیت و فلان فلانی از اددیانی که الان در اسب حاضر هست هیچ کدوم از اینها دین های آسمی نیست دین های تحریف شده هست طبقه وس نوس خود قرآن و احکامی که خداوم بر آنها صادر کرده بهخاطر تحریفاتشون بخاطر انحرافاتی که اونها داشتن دینشون عوض شده رفته دینشون یهودی شده پس خداوم با مذمت ازشون یاد میکنه یهودیت بر مزمت دیگه انسان نمیتونه بگه که نه اونا مسلمانان اونها نجات پیدا میکنن دیگه بعد از اومدن رسول الله صلی الله علیه و اقامت حجت بر اونها شده هرچند که ما اعتقاد بر این داریم که ما خود من میگه که ما کله معذبین حتی نبعت رسول تبعت پیغمبرین فدسی عذاب ندیدین حالا پیانبر چه پیامبران خداوند و چه پیامبری یک شخص راهنمایی برای مردم در یک منطقه و در یک جا و در یک قشر خاصی ولی با أمَدَن رسول الله صلى الله عليه وسلم دیگر یهودی‌ها و نصرانی‌ها عذر ندارن خود سنین که خدا من در قرآن حکم کفرشون صادر کرده دیگه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثه کفرشون هوی گفته خدا سه‌تاست دیگه نمیشه گفت که نصران و عذرن و فلانی‌ها معذورن چون اون‌ها بر غیر فطرتن چون اون‌ها از فطرت خارج شدن و حالا بحثش بحث قضیه تکفیر و این مسائل بحثش مفصله که الان نمی‌خوام وزش بکنیم تو اینجا مطلبی چیزی هست بحث واضحه تا اینجا بله کشتن زنان و کشتن پیر و پیر زن همین ها شامل میشه نه شده ولی خب اینجا بحث خصوصه که اینجا مثلا بچه ها را کشتن بخاطر همین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در اثر همین کارشون این روایت رو بهشون میگه هنی این گفتار رو بهشون نقم میکنه. و بحث اون بحث عدم کشتن زنان و پیر مردم و پیر زنان بهخاطر اینکه علت اونجا مشخص شده و اونم هم اینکه نگن اسلام دین خشنی هست و مردم به خاطر خشونت اسلام وارد اسلام نشه. تا اسلام ناشایست جلوه پیدا نکنه در نزد مردم. حالا بیشتر به خاطر سبب هااست ولی که بچه نووزاد به بخاطر اینکه از خودش هنوز هیچ ادتی نداره سوالی هست بله نوزاد بحث ترحام درش هست یعنی بحث مثلا که اسلام ناشایست جلوه پیدا نکنه لیکن در بحث شدت کشتن نوزاد از شدت کشتن پیر زن و پیرمرد مرد و زن بالاتره به خاطر الا در این به خاطر اینکه در این حدیث علت دیگری هم بیان شده و اونم هنوز از خودش تکلیفی نداره که بخواد گمروهی رو خودش مکلف بکنه یا گمراه انتخاب بکنه یا انتخاب بکنه همین حدیث رو روایت هست حتی hadis en محمد Imam Ahmed og sannet-e-saheim. Hva subhanakallahu alaihi wa rahmdi, subhanakallahu alaihi wa ala rahmdi,